سلام و عرض و خدمت شنوندگان کانال تلگرامی هزار افثان داستانهای افسانهای صوتی با کتاب افثانه های اوکراین در خدمتتون هستم داستانی رو از این کتاب بهتون تقدیم میکنم از بخش دوم قصههای های سهر و جادو و اسم داستان هست ایلیا مرومتز و بلبل راهزن به نام خدا روزی روزگاری تو روستای مروم تو خانواده ای است پسری به دنیا اومد که نام اون رو ایلیا گذاشتن. پدر مادر ایلیا روی زمین کوچیکی کار میکردن و محصول کمی به دست می آوردن و با اون به سختی میتونستن شکم خودشون و پسرشون رو سیر کنند ایلیا فلج بود و نمیتونست کاری انجام بده سی سال از عمرش گذشته بود و فقط کنار اجاق لب میداد روزی که پدر مادرش به جنگل رفته بودن سه پیرمرد به در کلبه اونها اومدن و گفتن ایلیا ایلیا در رو باز کن ایلیا جواب داد من چطور در رو باز کنم پاهای من انقدر ضعیفند که نمیتونم حتی روی پاهام بایستم پیر مرد ها گفتن، بلند شد تو میتونی فقط باید کمی تلاش کنی ایلیا تلاش کرد و ناباورونه تونست بیشته. به سمت در بره و در رو باز کنه. پیرمردها مرت داخل کلبه شدند و بهش موجه دادند که بیماریش تموم شده و اون میتونه راه بره و بدوه و سرنوشتش چنینه که به زودی یکی از قهرمانان بزرگ خواهد شد و باعث خوشحالی و افتخار پدر مادر فقیرش میشه. اون وقت یک لیبان آب بهش دادند و گفتن این را بنوش تا ببینی چه اتفاقی میفته ایلیا آب رو جرعه جرعه نوشی و با هر جرعه احساس کرد که قدرت اون لحظه به لحظه بیشتر میشه تا جایی که انگار میتونست کره زمین رو جابجا کنه یکی از پیرمردها به ایلیا گفت بسیار خوب اما مواظب باش که هیچ وقت مغرور نشی و از این راز با هیچ کسی سخنی نگی ما این قدرت رو به تو دادیم تا باعث خوشی و شادی خانوادت بشی. از قدرت خودت همیشه برای حق و حقیقت استفاده کن و هیچ وقت تمگران رو یاری نکن. اونها رفتند و ایلیا تبدیل به مرد قوی هیکر شد که در تمام کشور هیچ رقیبی نداشت. تو اون زمان سپاهیان مغول به فرماندهی سه حاکم به خاک روسیه هجوم آوردند. سرزمین قازان رو تصرف کردند. ایلیا به قازان رفت و درخت بلوطی رو از ریشه کرد و به لشکر مغل حمله کرد. درخت رو دور سرش چرخوند و تمام مهاجمان مغل رو تارمار کرد. و به سه پادشاه اجازه داد به کشورشون برگردند و به مردم کشورشون گوش زد کنند که هیچ وقت فکر حمله به کشور روسیه رو تو سرشون نپرورونند. ایلیا پیروز به شهر برگشت و دید مردم از ترس مغال تو خونه ها و کلیسه ها پنهان شدن. به اونها مژده داد که دشمن رو نابود کرده. مردم جشن بزرگی برپا کردند و از اون خواستن که تو شهر قازان بمونه. اما ایلیا قبول نکرد و گفت باید برو مردم سرزمین های دیگر رو از شهر مهاجمان نجات بده. تا بتونن از اون به بعد تو صلح و آرامش کامل همه زندگی کنن. با مردم خداحافظی کرد و به سوی کیف پایتخت اوکراین حرکت کرد. مردم مجبور بودن برای رسیدن به کیف راهی بسیار طولانی رو طی کنن. چرا که در مسیر اصلی اونها بولبولی اهریمنی و قدرتمند زندگی میکرد. و هیچ پرنده یا حیوان یا انسانی جرأت نداشت از قلمرو حکومت اون بگذره. چرا که بلبل اونها رو میکشت. اما ایلیا ترسی به دل راه نداد و از راه مستقیمی رفت که به خانه بلبل می‌رسید او روی بلندترین شاخه درخت بلوطی لونه داشت و از اون نقطه تمام جنگل رو زیر نظر داشت هر وقت پیاده یا سواره‌ای از جنگل می‌گذش بولبول بول چنان چهچهه گوشخراشی میزد که تمام برک های درختان روی زمین میریخت و بعد فریادی میزد که درختها می میشدند و موجودات زنده همه میمردند وقتی چشم بلبل به ایلیا افتاد ای زد که برک ها ریختند و فریادی زد که دهان ایلیا به زانویش خورد و اسبش روی زمین افتاد ایلیا روی اسبش فریاد زد و اون رو سرزنش کرد که چرا از بولبولی چنین ترسیده و بهش گفت اگه بلند نشید تو رو جلوی سرکام میندازم تا تو رو بخورن. سپس مهیای جنگ شد. بولبول بول مون حمله بر شد. ایلیا تیری به سمت اون پرتاب کرد که به سرش خورد و روی زمین افتاد. اون رو از روی زمین برداشت و چنان محکم به زمین زد که بیروش و توان تسلیم قدرت بیماننده ایلیا شد. ایلیا کمربندی چرمی از رکاب اسبش باز کرد و بلبل رو محکم به زینبه بست و به سمت لونه بلبل به راه افتاد. بلبل اهریمنی دختری شرور و طبع کار داشت. وقتی از دور پدرش را اسیر ایلیا دید گرزی آهنین و بسیار سنگی به سمت ایلیا پرتاب کرد. ولی ایلیا شونه خالی کرد و گوز رو به سوی دختر پرتاب کرد و اون رو کشت. همسر بولبول که ماجرا رو دیده بود از ایلیا خواهش کرد که هرچه طلا و نقره و جواهر میخواد ازش بگیره و بولبول را آزاد کنه. اما ایلیا قبول نکرد و بهش گفت شوهر تو انسان ها و حیوانات زیادی رو کشته و باید سزای کارهای بد خودش رو ببینه. بعد به سمت کیف حرکت کرد. پادشاه کیف پرنس ولادیمر جشن باشکوهی با حضور درباریان برپا کرده بود ایلیا وارد دربار شد و سلام کرد پادشاه ازش پرسید کیو برای چه کاری به دربار اومده ایلیا داستان سفرش و اسیر کردن بلبل رو توضیح داد همه تعجب کردند و از شدت ترس ایستادند یکی از قدرتمندترین پهلوانان نامدار به نام آلیوشا گفت امکان نداره کسی بتونه بلبل رو شکست بده. ایلیا اون رو مسخره کرد که چه پهلوانیه که از بلبلی میترسه. بعد از شاه و درباریان خواست تا به محبته بیرون قصر برن و بلبل رو ببینن. شاه و ملک و اطرافیان بیرون رفتن، و وقتی را اسیر ایلیا ایریا دیدن شکف زده شدند و اون رو تحسین کردند و گفتند او لایق مقام قهرمانی درباره. اون وقت شاه به بلبل دستور داد که چهچه چه ها و فریاد بزنه. بلبل گفت این تو نبودی که من رو اصیل کردی. من از کسی اطاعت میکنم که من رو شکست داده. شاه به ایلیا اشاره کرد که از بلبل بخواد چهچهه بزنه. ایلیا ابتدا شاه و ملکه رو به کناری برد و با سپری اونها رو پوشان. تا پرده گوش اونها بر اثر فریاد بلبل پاره نشه. بعد به بلبل دستور داد فریاد بزنه. بولبول چهچهه وحشتناکی زد. طوری که برک های تمام درختان روی زمین ریختن و تمام دلاوران از شدت ترس زانو بر زمین زدند و وقتی فریاد زد هر کسی تقلا میکرد که جون خودش رو نجات بده ایلیا پهلوانان رو مسخره کرد و بلبل رو روی زمین زد و اون رو کشت شاه او رو به عنوان قهرمان بزرگ دربار قبول کرد مدت زیادی نگذشت که ایلیا فهمید شاه و ملکه چقدر دمدمی مزاجند و هر لحظه به رنگی در میان پهلوانان قبلی دربار که به شدت نسبت به ایلیا حسادت میکردند ها کردند و چهره ایلیا رو در نظر شاه سیاه کردند او را برون داشتند که قهرمان جوان را به سیاهچال بیاندازند شاه همین این کار رو کرد و به مدت سه سال هیچ خوراکی به او ندادن تا بمیره اما دختر ولادیمر که عاشق ایلیا شده بود به دور از چشم پدرش برای ایلیا غذا و هر چیزی رو که نیاز داشت میفرستاد سه سال گذشت تا اینکه کالیم پادشاه مغول نامهی تهدید به شاه کیف نوشت و به اون دستور داد که کشورش رو تسلیم اون کنه وگرنه حمله میکنه و با زور و خون ریزی کیف رو تسخیر میکنه شاه کیف حراسان شد و ابتدا با ملکه و دخترش مشورت کرد دختر پیشنهاد کرد که به دنبال ایلیا بفرستن شاید هنوز زنده باشه چون اون تنها کسیه که میتونه در برابر سپاه موقول بیست و اونها رو شکست بده شاه گفت نه این ممکن نیست چرا که سه ساله اون رو در چال بدون آب و غذا رها کردیم و او حتما مرد و استخوانهایش پوسیده دختر اصرار کرد و گفت ضرری ندارد اگر امتحان کنیم و کسانی رو به زندان بفرستیم تا از او خبری بیارن پس به دستور شاه چند نفر به زندان رفتند و ناباورانه دیدن ایلیا زنده و سر حاله و زیر لب آوازی شادمان سر داده به پادشاه خبر دادن شاه خودش به دیدار ایلیا رفت از پله های قمناک سیاچار پایین رفت و از او خواهش کرد که بدیه های اون رو ببخشه و اکنون که خطر مقلها کشورش رو تهدید می‌کنه، به کمک او مردمش بیاد ایلیا قبول نکرد و گفت من جونم رو به خاطر شما به خطر نمیندازم شما منو بدون هیچ گناهی تو سیاهچال بدون آب و غذا رها کردید تا بمیرم. اسرار و خواهش شاه به جایی نرسید. به کاخ برگشت و ملکه رو پیش اون فرستاد. اما این بار هم ایلیا قبول نکرد که به اونها کمک کنه. دختر شاه به پدرش گفت من میتونم اون راضی کنم. پس پیش اون رفت و خواهش پدر مادرش رو تکرار کرد. ایلیا گفت تو جون منو نجات دادی و برام آب و غذا فرستادی من به خاطر سرزمین روس و به خاطر تو نگرانم و به جنگ مغول ها میرم پدر و مادرت باید به داشتن دختری مثل تو به خودشون افتخار کنن ایلیا از زندان آزاد شد و به نبرد سپاه مغول رفت همه جنگجویان مغول رو تا کرد و کالین شاه مغول چون اینجوری دید به نبرد تنبتن با ایلیا اومد. نبردی که سه شبانه روز به طول انجامید. سرانجام کالین ایلیا رو, رو روی زمین زد و روی سینه اون نشست و لحظه ای فکری کرد و به ایلیا گفت من میتونم تو رو اکنون بکشم اما پیشنهادی برای تو دارم و اون اینه اگه به سرزمین من بیای داماد من بشی و مدافع مقلام باشی تو را نمیکشم. کشم. ایلیا یاد حرفای اون سپیر مرد افتاد که وقتی که اون رو شفا دادن بهش گوش زد کردن که تا زمانی که ایلیا تو خاک روسی است و برای اونها می جنگ و فداکاری میکنه، قوی و شکست ناپذیر میتونه باشه و اگر از اون فاصله بگیره ضعیف و نابود میشه. پس با خودش گفت کالیم من رو بر خاک روسیه انداخته و نمیدونه که این خاک لحظه به لحظه نیروی من رو بیشتر میکنه. لحظاتی بعد در حالی که شاه مغول فکر می‌کرد ایلیا داره درباره پیشنهاد اون تصمیم میگیره ایلیا که خودش رو بسیار قدرتمندتر از قبل میدید بلند شد و پاهای شاه مغول رو محکم گرفت و شاه رو به هوا پرتاب کرد و او چنان روی زمین افتاد که دردم جان داد. ایلیا جنازه کالین رو برداشت و دور سرش چرخوند و با اون بقیه سپاه مقل رو هم نابود کرد. جنگ با پیروزی روسیه تمام شد و ایلیا به کیف بازگشت. به خواستگاری شاهزاده رفت و با او ازدواج کرد و سالهای سال با شادی و آزادی با همدیگه کردن کانال تلگرامی هزار داستان داستانهای افسانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی t.me slash مهران دوستی t.me نقط m e d o u s i نشانی وی ما M-E-H-R-A-N d o u s t, -E -U -S -T, -T -E b